یا حسن هزار هزار قلم تو قم برداری بزنم به تخته که این همه نوکر داری ای که هفتاد و دو تن سردار بی سرداری یا هزار هزار قلم تو قم برداری بزنم به تخته که این همه نوکر داری، ای که هفتاد و دو, دو تا سردار بی سر ارباب شای خوبان ارباب بده فرمان ارباب تا بدم جانوی عبدالله ارباب شه خوبان ارباب بده فرمان ارباب فرمان تا بدم جان حب بکیمان حسن جان حسن جان حسن جان حب و قیمان حسن جان حسن جان حسن جان نفسی فوق مسیحا داری ارباب و سد فیش حق منصبی والا داری ارباب و سد خدایی خیلی خاطر خوا داری ارباب و سن. نفسی فوق مسیحا داری ارباب حسین پیش حق من سوی والا داری ارباب حسین خدای خیلی خاطر داری ارباب حسین ارباب عرباب بیقرارم عرباب سکارم بی کارم عرباب تو رو دارم عبی عبدالله عرباب بیقرارم ارباب کسو سکارم هر وقت رو دارم عبی عبدالله حب و قیمان حسن جان حسن جان حب و قیمان حسن جان حسن جان حب و جان, حسن جان حسن جان حسن جان حق کن حسن جان حسن جان حسن جان نسبی فوق مسیحا داری ارباب و پیش حق من والا داری ارباب و خدای خیلی خاطر داری ارباب حسین پسی فوق مسیحا داری ارباب سے پیش حق منصبی والا داری ارباب سے خدای خیلی خاطر خوا داری ارباب سے ارباب بی قرارم ارباب چه سو کارم ارباب درد دارم بی عبد حب حبش ایوان حسن جان هسند جان، هسند جان، هسند جان. حیعت بیت الزحراء. سلام الله علیها. B